حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردا یه روزه بهتر بلک هوادارت چون بلدی بخندی با چشم دل ببازیم با اش دل ببندیم هجما که قلب سبز یچیده توی دنیا از وجه موج شادی صبر دو به حس فردا دچ بچه دل به سبز یچیده توی دنیا از وجه موج شادی تا فردا و حس فردا. فردا, فردا سلام علیکم حال وقتتون چطور خوبین خوشین سلامتین من فرشید منو فین جر رادیو پس شماره 937 امروز دمروش سه شنبه سه خبر خبره همه چی خوبه حال اوضاع؟ روزا دماغتون چاقه ما هم خوبیم زنده ایم دیگه شکر خدا سامی هم خوبه هستش ما علت این که دیگه صحبتی نمی کنیم در مورد این سر و سامون گرفتن سامی و اینا ظاهرا دونیم، آقا قضیه اینه که ام به بعضیا مشتبه شده مثلا سامی مونده رو دست ما مثلا لابد و ایراد ای و ایرادی چیزی داره و دیگه اینه که ما فعلا دیگه تبلیغاتو متوقف کردیم تا این شایعات بی اساس. بیش از این قوت نگیره دیگه اصلا از قدیم آقا گفتن عطر آن است که خود ببوید نه اون که عطار بگوید اینه که دیگه سامی هم باید خود ببوید دیگه نه این که فجید منافی بگوید اینه که فعلا گذاشتیم اختیار خودشو خودتون خودتون ببوید اگه پسند شد ببرید اما آم ما امروز آخرین روزیه که میخوایم در مورد نفوذ صحبت کنیم تعداد زیادی از منافس هنوز بازن در نگرفتیم مونده رو دستمون همینطوری بدون هاشی اطلاف وقت صاف بیریم سر موضوع امروزمون نفوزهای متفرقه است از نفوز توی ذهن کودکان بگیر بیا تا نفوز شکمی و نفوزهای مستقیم جاسوسان سیا و موساد و همه اینا سامی جان برو بر بریم که امروز دیگه باید خودت ببویی خودتونشون بدی برو بریم تو کجا هست خبر نداری؟ اسلام آورد رفت. اسمش هم نادن ولاد بر علی پوتین. بله. آخه تیم ویزام اونجا ف... سری دست به کار شدن آره. این هم مسلموشه تا ببینیم. اون کیمیا اسلام بیاره. یعنی پخ پخ؟ پوتین پخ پخ؟ ای تو مبارکه. مبارکه. آخه آقا من حالا چیزه من الان میدونی چی شده؟ من الان دیروز نگرانم این پوتین میخواد برگرده بره کشورش این چی میخواد بهش تقدیم کنه که جبران محبتش رو بابت اون قرآن قطیه کرده باشه من به خدا نگران اولین منشور حقوق بشرم این قش جوم میده دیگه واسه کادو دادن هم اندازش مناسب هم هیچ مجلسی ها به رو مننده بینه اگه مسئول سازمان میراست فرنگگی زرنگ باشن قبل از اینکه که آقا خودش بخواد دست بذا رو چیزی خودشون مثلا یه اننجلی چیزی پیدا میکنن قدیمی میمی و اینا جای این قرآانه پیشنهاد میدندی و گرنه آقا خودش بخواد به گرده دنبال صغااتتی برای پوتین باور اوورکن هم منشهور حقوق بشر رو میره میده نمی نامیه اونم ندنده سر ستون تخت تخته کتیبه کتیب ستونی نقشه رستم چیزی رو دست میداد غاالبی در بیا رو تقدیمشکنه. اواع خیلی بدیه بعد منتظرمون ببینیم چی پیش میاد دیگه؟ سلام بر بچ پس فردایی سلام علیکم حالا اینکه عمو پوتین فقط واسه بعضی یا سوغاتی نیبرده بود واسه ما هم بود اومدم اولن اینکه مدرسه‌مون تعطیل شدام سانی اینکه این دستگاه های پارازیت اندازشونن به خاطر قدوم مبارک عمو پوتین و بقیه یه دو سه روز یه تعطیل شدن همه رو آینه میگیریم آ جاتون فاضل ایول یعنی ببین رهبر فرزانه چقدر به سلامتی پوتین جونش توجه داره حاضر نیست دو روز از این پارازیتایی که شبانه روز تو حلق مردم می‌کنه نصیب ایشون بشه رفیق و متحد منطقه ای به ایشون میگن یاد بگیرین بیا آقای یه نامه سرگشاده بنویسیم امضا جام کنیم پوتین اقامتشو تو تهران یک دو ما تمدید کنه نمیشه پوتین پوتین پوتین جان فرید هم خوبی ببین عیسی دا من میشناوی جون مادرت بیشتر بمون تهران نمیدونم دیگه این پیغام بهش میرسه یا نه دیگه نمیدونم بعید میدونم روی من زمین بندازه اگه بشنبه من خلاشم کردم دیگه خانم و آقای اون دختر، خانم و آقا پسرات، تو نظام مقدس ما با متهمین مختلف برخورتهای مختلف میشه مثلا یکی رو اعدام میکنن، یکی رو میکنن، یه سری رو شلاق میزنن ولی مثلا یکی از کسایی که صد میلیارد تومن پول مملکت و خورده رفت کانادا رو طبق گفته های رئیس سازمان بازرسیه کشور نظام اینجوری باش برخورد میکنه اینجوری الان تلفنی هم باشه ارتباط داریم خستا نباشید واقعا یعنی این برخورد سفت و سخت نظام با این آقا رو باید با آبتلا نوشت زد به دیوار البته خب برای اینکه که از این برخورد بعد بشه و زبل باشی دیگه میدونی در ادامه رئیس سازمان بازرسی گفت که ایشون یک همچین اموالی تو ایران داره بل خونه های آخرین سیستم و ماشین های که زا.بل خونه های آخرین سیستم و ماشین های کزا. از متهمی که از متعامی که میلیارد. ها تو من خورده الان مجازاتشینه که نظام تلفنی باش در تماس دیگه چی میخوای چما؟ چی میخوای دیگه بجوس خونه های آخرین سیستم و ماشین های که دیگه بهتر از این چی میخوای داخل؟ والا با این دوز دیاشیم. <موسیقی> ها فرشید شما که دو هفته برنامه در مورد سکسیست و سکسیستی میذارید خودت چرا برنده آتن نگاه سکسیستی بهشون کردی؟ یعنی جا اول خانم ها بیاند بعد آقایون؟ تا چه آقا؟ برای چه خانم ها مقدمم کی گفته آخه؟ اگه سکس س دییل نیست چرا خانمما مقدمم اون <تصفيق> خب یه خانوی ورددی آقا دوره یه آقا یه خانم برای چی جدا کردی آقا من نمی این حرفهاات کاتتم نمیره عزیزم مع اما قرار بود اینا هر چه نفرشون با هم بیان پس سرراخ مشکل ویزا پیدا کرد کارت اقامت ما من همه همین دا همه رو بعد من به توضیح بدم مگه اقا اصل همینی که هست حالا که ایننجوری شد موثر قرهره که چی کردیم دو تا خانم اول انتخاب شده آب بیا ثابت کن نکردیم. والا به همه چی کار دارم ماشاءالله همینه که هست آها رسید میانا پسرا شنبه میام شنبه شنبه چرا اخمو تو خودت شادی آزادی و شکات رو منه من میافتم یادت همه حالش خوبه تا اونجا که یه روز فهم که همه کاراش اشتباهه دیگه بازیم نده میبینی که حالم بده هر روز یه سازی زدی دل منو بازی دادی یه روزارون مثل من برداشت یه فاز جدید یه روز از خواب میفری پشیمونی دیره ولی میبینی که دارم میرم میگی میشه نری. و امروز میریم سراغ نفوزهای دیگه متفرقه دیگه تای بازار تای بار دیگه هرچی مونده دیگه میخوایم منافذو ببندیم دیگه از نفوز کیف سی باران مرغ تا تلاش ایران برای نفوز در همه جا بیانیه شماره 937 بدانید و آگاه باشید آن چیزی که شما آن را نفوذ میدانید شاید واقعا نفوذ نباشد لکن شما فکر می کنید نفوذ است وگرنه نفوذی که با مک‌دونالد و ران مرغ و تبادل علم و اینجور جور صورت بگیرد که نفوذ نیست و به جای اینها اینکه شما یک سرتان توی لبنان و سوریه باشد و سر دیگرتان توی عراق و بهرین میشود اصل نفوذ و وای بر شما که از همیشه نفوظ گانید ام زاو بعد از این همه نفوذ نفوذ کردن خودشان در همه جا و همه کس نفوزی شده های از نفوز تک تک شما در این برنامه استقبال کننده های رادیو پس ده, ده, ده, ده. شی داد نفوذی گفتی پس بذار دگم نفوذی کیه نفوذی تویی نفوذی اون تیمچه نفوذی اون دیسانته نفوزی نفوذی تونین که اینجوری نفوذ کردین تو دلش شنونده هاتون مثل من با... که اینجوری دوستتون داری نفستون حق دمتون باده. گرم تنتون سلامت خدا از شما درد نکنه ولی آخه چرا اینجوری چرا اینجوری می‌کنی خب بعضیا نمیدونن این اخلاق ها رو الان سامی ترسیده اصلا نمی‌دونه چیه قضیه محبت داشتنیشون به ما نه جان چیزی نیست شیوه بیانشون اینقدار خشم بوده این فکر حمله تروریستی شده این چش ترسیده دیگه نکنین این کارو رو ممنونم خوام از دستا یه برند فست فودی مثل مثلا مکدونالد برای ایرانی ها یکی از جذابیت های توریسی خارجه خارج کجاست؟ خارج هر جاییه که مثلا مکدونالد داشته باشه مثلا یا کیفزی داشته باشه عزیزانم که میان بیرون از کشور و مثلا چندین وعده توی مکدونالد سیراب شدن و بریشتن هم. با افتخار برای فامیل آشنات تعریف میکنن که آخو یک مکدونالدی رفتیم زدی بعد حالا این در تصویر داشته باشید تو خیلی از کشورها اصلا مک و کی سی و برگر کینگ و فلان اینا خورده میشن مونتا نه به عنوان جذابیت توریستی که نه به عنوان یه غذای پز دادنی بلکه به عنوان یه فاست خیلی خیلی معمولی ارزون قیمت خیلیها فقط برای شکنپور کنی بهش نگاه میکنن یعنی دیگه تقی قضیه میرسم به اون حالا شما تصور کنید چی شده که توی ایران و برای ما ایرانی ها همین تصوری از این جور برندای فسفود به وجود اومده ها میشه گفت یکی از دلایلش اینه که تو ایران راه های شیکمی نفوز هم توسط مسئولین عزیز بسته شده و با توجه به این که خب از آدمی زاد اگه هر هرچی رو به زور بگیری براش میمیره اینجور برند ها و فسفود ها برای بعضی ها تبدیل شدن به یه که های الان تحریم ها میشه های آمریکا الان میاد و وای چیکار کنیم چی بپوشیم الان بخوایم بریم که ایف سی یعنی اصولا دژمنان خارجی از بعضی نفوذهاشون تو دل مردم شهید پرور ایران خودشون هم خبر ندارن که ندارن. منتها مقامات عزیز با جبهگیری های لجبازانه باعث شدن مردم ایران فکر کنن مثلا مکدونالد که کی اف سی و, و این چه عتیقه‌ای هستن که حالا بخوان تو ایران باشن یا نباشن. و یعنی که همه میدونن یه خیارشور ساندویچ فری کسیف و اسقر سگفاز میارزه به 100 تا این به خدا. ور غریب سلام چه خبر ها؟ سلام سلام فرشید جان از نفوز تو ورزش بگم بگو، که اصلا بگو. م... ماهیت جنس ورزش با نفوذ رابطه مستقیم داره همین فوتبال در مستطیل سبزارهحتما از نفوز از چپ راست میانه زمین واسه به نتیجه رسیدن رو تو گل زدن بله اما یه نفوز از یه جنس دیگر فرشید. داریم تو ورزش مقصد تو این چند سال اخیر اجازه بده صحبت های آقای محمد دادکان پیش دانشگاهی ورزش و رئیس اسبق فدراسون فوتبال بشنبیم که در مورد این جنس نفوذ اینجوری گفته بشنبیم مدیرهایی که مال ورزش نیستن اطلاعات ورزشی ندارن از یه مجموعهی مثل شهربانی نمیدونن سپاه اینا رو میارن اینا رو میارن که چی کار کنن ای کار برادن برن همونجا اینا رو ما بهمی داریم از ارتش، سپاه میاریم مدیر میذاری اینو رو میذاریمش مدیر که چی؟ کار ببره اقا خداییش خب ای کار برادن سر جای خودش آره دیگه راست میگه دیگه فایبرز یه گوته فراگه دارم این افراد نفوذشون تو ورزش واسه چیه باسن گوت فراگه اینجا یعنی تو ورزش تو خیلی از ورزش ها مثل همین فوتبال خودمون دوباره مه. کلی فرشید گردش پولی توشه میلیاردها وقت کلی شهرت مشهور شدن داره عکس و مصاحبه و تلویزیون داره داره تازه هر هم زرر بوده تو ورزش ما مخصوصا با این چند سال اخیر تو زمینه باشگاهی توسط همین نفزی ها بوده البته بهن. به نظر من وقتی به خصوص بعضی از این نفوززی ها که میان خصوصا این سردار مردم رو میان تو ورزش خیلی جذاب میشه ماجر یادته اون موقع سردار روییانیان بود چقدر می خندیدیم فریبورددز آره آره یادمه یادش معان چی؟ برام که <تصفيق> آره. اما باز باز در ادامه میشه به مسائل مهمه قرارداد بتن همین آدم‌ها با بازیکن‌ها یا مربی‌های خارجی اشارکت تو این فوتبال تو همین چند سال اخیر صدها هزار دولار دلار ضرر زده. کلی باشگاه‌ها بدهکارن. یا از نظر معنوی مثلا فیلم یه شاغلت قصاب خبرش اومده بود یه شاغلت قصاب خارجی رو فریباده بودن واسه یکی از این مدیران نفوذی به جای یه بازیکن خارجی فوتبال که تو آستانه قرارداد دادن بیشتر والا. خب شاغلت قصاب دل نداره مای فریدورس. هم میاد ایران دلش وا میشه. هم یه پولی میگیره. زندگیش همینور به اون وبر میشه. بالاخره اینم یه راه دیگه راست میگی <تصفيق> راست میگی احبته من اصلا فکر کنم مدیر فکر کنم مدیرامون این کارو به خاطر همین سوابش میکنن دقیقاً دقیقاً, دقیقاً همینطوره برای بازرسی از تیم فوتبال زنان چه خبر بازی کردن چی شد نتیجه ای که دیروز اعلام شده بود فرشی تو خبرگزاری داخلی درست نبود یعنی به وقت اولین بازی تیم زنان آره ما هم هرچی منتظر بودیم به آخر سر خبر اومد که تیم مقابل تیم پرتغال در دوازه ساعت دیگه یعنی حدودن سه صبح چهار شنبه به وقت ایران اولین بازی زنان مقابل پرتغال انجام میشه عجب پس فردا صبح حدودن دیگه نصف شبه هی. نصف شب ایرانه نصف شب ایرانه بله بسیار خوب ممنونم ازت فری برزه غریب باید می کنیم تا هفته آینده شنبه. تا هفته آینده شنبه خدا نگه داره. Cause all of my kindness is taken for weakness. Now I'm four, five seconds from whiling. And we got three more days till Friday. I'm just trying. این هفته ازتون سوال کردیم بهمون بگید نظرتون در مورد واژه نفوذ چیه و گفتیم بهمون بگید تا حالا شده احساس کنیم بهتون داره نفوذ میشه حالا چه طرف دوشمن چه دوست یا خودتون تا حالا رو کسی نفوذ داشتین یا سعی کردین به جایی یا کسی نفوذ کنین خیلیاتون پاسخ دادید سلام من از آزمایشگاه دانشگاه شریف تماش می‌گیرم بهتون اینجا روی وسعت مختلف در مورد نفوذ دارن آزمایش میکنن و بله. کشف بسیار بزرگی رو متوجه شدن که سطحی که سوراخ زیاد داره هم زیاد داره. یعنی سوراخ زیاد. بله من از همین تریبون این دستاورد بزرگ علمی رو خدمت شما و کلیه دست در کاران و دانشجویان دانشیان دانشگاه شریف تبریک میگم. یعنی واقعا مرزهای علم و تحقیقاتو جابه جا کردین شماها. من واقعا تشکر می‌کنم. مهدی مهدیه مهدیه. مهدیه تو اینستاگرام گفته نخشی که حرف ف در این نظام مقدس بازی کرده آمیتا باچان تو بالی بازی نکرده فتنه نفوز منافق شبیه خون فرهنگی جریان انحرافی فرشید منافی فرکانس رادیو فردا و در ولی مطلقه فقی به کجا رفتی یعنی ها به خدا یعنی فه نداشتیم راست بگیر نصف مشکلات مملکت حل بود من هم عیب نداره حاضر بودم خودم رو فدا کنم حال اسم خودم رو عوض کنم بذارم یه چیز دیگه جمشید مناری مثلا رادیو پس فرده کلا تحتیلش میکردیم دیگه این فه کاش نبود لادن گفته فرشی جان شما بالقوه نفوذی هستی البته به قلب ها مرسی از تحکید درون بخش قلب لطف داری شما بعد پایا باغری توی اینستاگرام گفته بهترین نفوز اونیه که تو دل آدم نفوذ کنی و خودشون راه های رو برات وا کنن و پشت سرت هم درو در ببندن که دیگه نتونی خارج بشی بله این عادت نفوز نیست اسمشین با پای خودت تو تله افتادن دیگه یه جورایی تو این مایه هاست دمه شما گرد. فرشی جون ایمیل دادن فرشی جون سلام منم از کامران و فریبورس کلی تشکر میکنم درسته که چیزی نمیگیم ولی خیلی خبرهای جدید و مفید میفرستند. و گفتن تشکر فراوان از سارا و الی خانوم بنامه با این دو نفر خیلی بحال تر شده بود مرسی و غمورونه همه بیجن از آلمان این ایمیل رو داده داد چند روز پیشه بله من یک بار دیگه بگم که مهر و سعید از شنبه با ما خواهم بود دو روزی هستن شنبه و یه شنبه مهمون داریم خلاصه شنبه و یه شنبه میان دو تا کارموزای آقا هم و بعد از اون ببینیم که و هر حال چی میشه و کدوم یکی از آقایون و کدوم یکی از خانم ها موندگار میشن در رادیو پس فردا برای شش ماه آینده رویا آرام از لندن اردشیر مردی برای همه فصول از پاستاران علی محجوب تهران پونک زوج خوشگل سندیگو جواد و رویا شیراز محسن مول و فریخفن چابهار شهر همیشه بهار تاج علی هستم از نفوز و مسکن مریم سیزده, سیزده از ارتش تهران نوید و ترگل و سهر از اسفهان نفوز نفوزیان از هجا یعنی از جایی ننوشتن از کجان؟ فرو گل از یزد سودی از سانفرانسیسکو نوید از غضوین راین و از تهران فرهاد تایر از تبریز صدادی از بر بچههایی که امضا کردند پای اپولیکیشن ما رو و یه توضیح بدم که رادیو پسورده اونهایی که نمیدونن چون خیلی وقتا فقط اشاره میکنیم رد میشیم. میتونید رادیو پسوردار رو. علاوه بر جاهای مختلفی که میتونید بشنوید و دانلود کنید و از طریق خود رادیو فردا و توی سایت رادیو فردا دانلود بکنید یک اپلیکیشنی هم داره اپلیکیشن رادیو پاس فردا که برای iOS یعنی برای اونایی که آیفون دارن یا آیپد دارن میتونید سرچ کنید رادیو پاس رو پیدا کنید و از طریق اون اپلیکیشن میتونید برامون مسیج بفرستید میتونید مسیج صوتی بفرستید خیلی از این تلفنایی که میشنوید صداشون رو پخش میکنیم خیلی از این دوستان از طریق اپلیکیشن صداشون رو بر ما میفرستن و پخش میکنیم بر... یعنی تعداد خیلی زیادی و از اون طریق میتونید برنامه ها رو دانلود کنید با چند کیفیت بشنوید میتونید وصل کنید به بلوتوست ماشینتون دیگه نمیدونم خیلی کارهای دیگه میتونید بکنید اینم تبلیغه اپلیکیشن رادیو پاس فرده بود برای اونایی که نمیدونن اینم امضا جای امزام داره هر روز میتونید امضا کنید اسمتون رو و محلی که هستید رو برای ما بفرستید به صورت رندوم هر روز چند رو انتخاب میکنیم و میخونیم خانومها، آقایون، دختر خانم ها و آقا پسر ها. الهام خانم زهرایی یا همون الهام چرخنده خودمون این روزا درگیر جلسات و نشست های با دانشجویان دانشجویان دختر تحت عنوان با من قدم بزن هستند. اونا رو نسبت به ضرورت حجاب و افاف میخوان آگاه کنن یعنی لاغل توی پسترهایی که برای اعلام این جلسات طراحی شده نوشته شده بود نشست سمیمی با خانم الهام چرخنده اسمشن بود با من قدم بزن حالا یه بخشی از یکی از این جلسات رو گوش بدیم دارن در مورد ضرورت هجاب و این مساحل صحبت میکنن خانم الهام خانم زهرایی یا همون چرخنده سابق راسته کاربرش افغانستان گرفته بود ولی نداشت. نه، بشه. نه، کنیم جواب یعنی خدا به دور، خدا به دور. فکر رهبر یه بار دیگه بعد فامیل این الهام زهراعی رو عوض کنه بذاره الهام کماندو مثلا یا الهام شمی‌دونام آچی حالا یه چیزی دیگه آدم نمیتونه دیگه بگه دیگه بقیه شو دیگه میدونین دست به دست والمون بست از تو رسانه یعنی نشسته سامیمانش که این باشه احتمالاً تو جلسات غیر سامیمانه دیگه فوش مادر میدن دیگه احتمالاً بابا داری تو دانشگاه صحبت اه طرف که نشسته اونجا یا نشوندنش اونجا که حرفای تو رو گوش بده دانشجوی مملکت مثلا الهام خانم چرا آقا پای مادر طرفو وسط می‌کشی تازه بعدم میگه دست رازی بهش نکنین جوابشو شنید بهتماعا چند تا چرخنده کوچولو اونجا حمله کرده بودن مثلا سمت موهای اون خانمی که گفته بود شما خودتون اونجا بودین دیدین که آنجلیلا جولی هجاب سرش بوده آرایش هم نداشته یا نه خواستان چششو دردن خلاصه این هم از نشست سمیمانه ای افیفترین زن تاریخ جمهوری اسلامی دی خودتون تا تشبه خونین چه خبره قابل توجه کلیه ایدوشی زگان و بانوان گرامی. برگزاری جلسات و نشست های سمیمانه افاف و هجاب با حضور سرکار خانم الهام زهرایی تحت عنوان تن لشت و تکون بده با من قدم بزن در دانشگاه های سراسری کشور تره مباحث سمیمانه در مورد لزوم رعایت حجاب و ایجاد تحول در جهت زهرایی شدن برگزاری جرسات پرسش و پاسخ در محیطی گرم و دوستانه آشنایی و آموزش مبانی اخلاق و حیا به صورت معکوس و به روش لقمان حکیم و آموزش عملی جفت با توی دهن مخاطب به روش الهام کماندو. با شرکت در سلسله جلسات و نشست هایی تن لشی تکون بده و من قدم بزن دست در دست یک دیگر به سوی هرچه بیشتر زهرایی شدن گام بردارید ای با سلام و سه شنب شب را ضمن وحشت از پیامت هدف قرار گرفتن یک هواپیمای نظامی روسیه توسط ترکیه با مروری بر سرخط مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته آغاز می نماویم مخالفت مجلس با دو فوریت لایعه شفاف سازی انتخاباتی کاندیداها. و نظر کارشناسان که عجب زبل یعنی نماینده ها میخوان طولش بدن خودشون برای انتخابات اسفند غیر شفاف خرج کنن بعد چاله هر چی شد خدا کريمه تعجید روابط جمهوری روسیه و ایران بر افسایش تورید و صادرات گاز و سوال ناظران با این مضمون که حالا فعلا بذاریم ببینیم توی این مدت که ما تحریم بودیم قطر از منابع گازی مشترکش با ایران چیزی هم باقی گذاشته یا نه و اعظام تنبیهی یکی از مدیران متخلف کوری شمابلی توسط رهبر معظم این کشور کیم جونگ اون به مزرعه برای کار و توصیه کارشناسان به این مدیر متخلف که داشت برو خدا رو شک کن ما کاتیوشا مورد هدف قرار ندار مهمترین اناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند اینک مشروع خبرها با همکار خوشحال هم نم بول بول. چندی پیش احمد محمد پسر سر چهارده ساله آمریکایی در تگزاس آمریکا ساعتی را ساخته به مدرسه ورده بود اما مسئولین مدرسه و تصور اینکه ساعت وی بمب است موضوع را به پلیس گزارش کردند که این امر منجر به دستگیری موقه وی شد بر اساس گزارش های رسیده همکنون خانواده این پسر بچه از پلیس تگزاس درخواست 15 میلیون دلار غرامت کردند گفتنی است بر اساس گزارش های تکمیلی ارسال شده. اما اکنون در آمریکا تعداد زیادی از خانواده ها مشغول تشویق فرزندان خود به ساخت وسایل و کار دستی هایی بمب هستند. چون با توجه به زنی های موجود خانواده احمد محمد حتی اگر 15 میلیون دلار هم دریافت نکنند در نهایت بعد از چزنی های مستمر حداقل چهار پنج میلیون دلار. جانم جاننم قای میکروفونتر این کل درسته حالا دیگه کمی میخوای بیشتریشون نه منظور می که شما آقا بر چه اساسی مم. میگین چهار پنج میلیون دلار چه میدونم باشه یا سیک ک بگو دو سه میلیون دلار یه گرون هم پای نمیام حالا با عرضز پوزش اصلاح می کنمم در نهایت بر از چزنی های مستمر حداقل دو سه میلیون دلار را دریافت خواهند کرد که همین مبللاغ نیز می آینده کل خواندانشان را تغییر دهد. پایان مشوه اخبار همانطور که حتما در خبرها شنیده اید اخیرا شایعه شده است که سردار قاسم سلیمانی در های حق علیه سوریه زخمی شده برای معالجه به بیمارستان منتقل گردیدند برای درآوردن توتوی این خبر همکاری گزارش گزارشگرم خبرنگار واحد مرکزی خبر را به منطقه جنگی سوریه فرستادیم تا ما را در جریان آخرین تحولات منطقه قرار دهند همکار محترم اگر صدای بنده رو میشنوید اوهو چه خبرم است به ما بگید که این خبر تایید میشه یا نه همکار محترم حالا علو... همکار گرامی من که هرچی تلاش کردم نتونستم سردان و سلیمانی رو پیدا کنم اه. اما مقامات استپا و پربستی که اینجا اصلا میگن ایشون در این حوض ظالمان همکار گرامی پس این مقامات نه. این خبر تکذیب کردن یعنی همکار گرامی یعنی توی این مدت اصلا شما نتونستیشون رو ببینی ایجوری اسمار من نیروهای سپاه کند تا اکس ایشون رو به من نشون دادن و خده اکش خسته نباشن عکسش که دیگه... همه جا هست که با همکار گرمی یه تحقیقی بکن ببین چیزی ایشون اصلا وجود خارجی دارن به جای سردار قاسم سلیمانی سردار قایم سلیمانی هستن که با این بست ب... و والا همکار من خیلی پرس کردم ولی کردم دیگه... خب. یه جورایی شد که برادر را داشتن رو دستم شاکی می شدم ای بابا بب... چیزه ب... اجزه بدین الان یک کس برادر را اومدم پیش من بفرگوی بله. ما صدای شما رو داریم خواهیش بیکنم ما رو در جریان قرار بدین دیگه خودتون سری. بگو که چی من بلد نیستم که... چی رو بلد نیستی والا به خدا من فقط میکروفان بلدن دستم الو الو عل... همکار گرامی چی اوه شده اوه با... با چه خبره اونجا همکار گرامی همکار گرامی یک کس برادر اومده میگه نیرو شب دارن میخوام عملیات کنن و میگه منم باید برم کاش تو قضا را نریو همکار اوه اوه گرامی ها اینا خودشون کلی کشته دادن تا حالا تو من جنگیدم بلدی اگه میخوای بدی والا همکار گرامی ازم پرسیدن آموزش تفاهی تو دبیرستان چن شدی گفتم 20 بالغ دیگه بابا نه با آخا آموزش دفاعی دبیرستان چی بود که تو خبری باش بجنگی در رو همکار گرامی در رو در رو وایل برم همکار گرامی. نه رو با... عجب خینگی بابا. یا این بابا. همکار ما ولی باب تشکران توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر خدا نگهدار چه خبر بود با این الان هیچی دیگه این دیگه تموم شد دیگه برم هجله و تاجگل سفارش بدم این بچه شهید شد و بکاره هیچی هوا نسبت خانوادگی هم نداریم از سهمیهش استفاده کنیم هم گرامی این نسبت به حساب نمیاد یا حذف شد شب بخیر های ما نفوس کردیم ما نخواد شب بخیر گفتم بودیم که یهو این اپه صداش در اومد این قصه امروز ماست داستان یهو عوض شد و رفت تو صبح بخیر و زور بخیر به میخواستم بهت بگم که آقای من منافی شما به شب خیرم خیلی نفوذ میکنه تازگی ها من شرمندم به خدا من شر... ولی هم شما همه چی هم دیگه گردن من ننداز دیگه خودت هم یه مقدار تقویات کن غذای مغذی بخور ورزش کن ای با این قصه ای امروز ما شما شب خیر تا صبح خیر ناجورن چهغله علی خاطی من دکتر خوبم سراغ دارم سامی هم دکتر خوب میشناسه معرفی میکنه بهت برو قشنگ تقویت فدات بشم من شرمنده تما دست خودمون نبود آله مملکت ما دیگه همه میدونیم جاسوس های معمولی روزنامه نگارا و اصلاح طلباب و اینا هستن اما میخوایم امشب در مورد یک روش جاسوسی متفاوت صحبت کنیم که حتی نیاز به جاسوس هم نداره و اون چیزی نیست جز نرمافزار سحیونیستی گوگل ارف یه از حوالی مدون پاسور، اون ورا رد شده باشین میبینین مثلا همه جا تابلوهای توقف مطلقاً ممنون و عکس برداری مطلقا ممنون و کلاً همه چیز مطلقاً ممنون اینا چسموندن یعنی اینقدر محتویات داخل این مکان حساسه که حتی ممکن شما با خیره شدن یا عکس گرفتن از دیوارش بتونید به اونجا به یه شکلی نفوذ کنین و امنیت اون محلو به خطر بندازین و اینجوری میشه که مثلا 30 ثانیه بخوای پای دیوار 4 متری که بالاشم سیمخار داره توقف کنیم مثلا بند کفش تو بخوای ببندیم میبینی 4 تا لباس شخصی S X large با کولتو پی سیم اومدن سراغت و دارن سینجینت میکنن اینقدر میخوام بگم حساس قضیه بعد گوگل نامرد یه نرم افزاری درست کرده شما میتونی بری تو خونت بشینی از اون بالا زوم کنی رو بیت آقا تا رنگ و مدل لباسه پنجده رو بند رخت آقا را اول بچه‌ها نریم زوم کنیم سرک بکشین تو خونه آغازشته کلی دارم میگم بدونین یعنی اینا چه راههایی برای نفوذ درست کردن بعد جالبه با وجود یک چنین نرم افزاری که در دسترس همم هم هست بازم از جلوی هر منطقه نظامی و امنیتی که رد میشی میبینی رو دیواراش تابلو بزرگ زدن عکس برداری مطلقاً ممنوع بابا از اون بالا همه دنیا با دو تا کلیک کل سیستم و تشکیلات و با جزئیات میتونن ببینن چون گیر دادی واسه کسی از آجر این دیوار این چیز عکس نگیره چه میدونم این هم یه دیگه جاسوسی دیگه که مخصوصاً الان خیلی هم روی بورس جاسوسی هسته‌ایه یعنی بعد از توافق هسته‌ای جمعیت دلواپسان عزیز مسائل نفوذ هسته‌ای به بهانه بازرسی رو مطرح کردند. و نگرانش بودن بود که نماینده‌های آژانس که ظاهراً برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای وارد ایران میشن بخوان اطلاعات هسته‌ای ایران رو سرقت کنن و در اختیار آمریکا و اسرائیل قرار بدن حتی گفته میشد اینا داخل عینکاشون دوربین‌های فیلمبرداری مینیاتوری کار موقع بازدید از داخل تأسیسات هسته‌ای ایران فیلمبرداری هم بکنن کم نبود آقا بگه اطمینان خاطر بده به این دوستان بهشون بگه این خبرام نیست بابا جان 70 سال پیش که ماشین دودی پیش رفته ترین چیزی بود که تو ایران تازه جایگزین اس خاطر شده بود غرب راکتور هسته‌ای داشته الان اطلاعات هسته‌ای ایران که هنوز خیلی مونده تا با مرحله 70 سال پیش آمریکا برسه آقا من نمیدونم قرار به چه دردی این بخوره میخواد تجدید خاطرات کنه جنبه نوستالژیک داره براش چیه داستان واقعا تکنیکرونی ما از های آدمی است که میخواد به چشم خود شاهد پیروزی باشه کامران ملکمتی سلام چه خبر از هنر و سینما و تئاتر و موسیقی سلام کشیده ولن به همگی امشب دو تا خبر از تلویزیون دارم اولی در رابطه با فاز دوم سریال در کار مهران مدیریه چی شده هنوز پخش نشده که کسی اعتراض کنه نه این با کسی هم اعتراض نمی البته چون در مورد یه مش خلافکار زندانیه اونا هم که انف... سنف و سندیکا و هرشمان ندارن داره آره چیزنه. ندارن نمیخده پس نمیخده. چی؟ داره. چی شده؟ جواد رزدیال اعلام کرد از ادامه بازی تو سری جدید انصراف داده و از نویسندو خاصی یه فکری برای نبودنش بکنن از اینجا به بعد چی شده یعنی اختلافی چیزی پیش اومده یا نه؟ نه نه اینجوری که ذ گفته اختلافی با مدیری نداره جدای شاید به خاطر ساخت یه سر... یه مجموعه جدیده برای شبکه نسیم که یه کار کمدی و جنگ به اسم سه شو سه شو سه, شو. یعنی سه... یعنی خیلی سه شده تو اون شوه احتمال است <تصفيق> خیلی که اختلافی نبوده بینه رویان و مهران مدیری دیگه چی دیگه چی داری برمون؟ قرار دیگه اینه که امروز عوامل خندوانه اعلام کردن که پیشتولید سری سوم این مجموعه شروع شده به زودی ضبط کارم شروع میشه و اینکه یه که جدید به برنامه میاد و با جناب خان دو تا یه قرار خیلی خلاصه بیشتر بخندونه شاید هم عروسک احلام باشه یعنی خیلی خوب خیلی هم خوب این کاری که سینا سباک رو خونده این کار مال به قول معروف تیتراج جدید خندوانه است یانه دیگه هم وانه محصوله در حقیقت فعلا دادن بیرون که برای سری جدید احتمالاً پخش میشه بریم بشنویم ببینیم, ببینیم چیه این تیتراژ جدید خندوانه رو با خداحافظی می‌کنم کامران تا شنبه تا شنبه خدا نگهدار همشهری 32 روز 8 ساعت خواب 8 ساعت کار ه ساعت خنده کار هر روز منه هش ساعت خواب هشت ساعت کار ه ساعت خنده تجوویز منه بهترین چیز واسه خیددن دیدن خندهوان است خندبان واسه دوی از بهترین بهترینبحاناند. بهترین چیز واسه خندیدن دیدن و خندوان است خندوان واسه دوری از پس بهترین بحان است اما دشمن برای نفوذ کردن گاهی ترین نقطه و آسیب پذیرترین نقطه رو انتخاب میکنه یعنی میاد روی مغز کودکان ما کار میکنه تا با اونها نفوذ کنه مثلا به این بخش از فرمایشات دکتر رحیم فوری از غدی یعنی ببخشید جواد رضویان توجه کنید که حالا حرفش هم شد با کامران که ببینید چطور غرب داره با نفوذ این باورهای خودش رو داره نفوذ میده و بنیان‌های ما رو تغییر میده اینا الان اومدن کودک ایرانی را متن نظر گرفتند که چی بشه که زمانی این کودک تا سال آینده زمانی که هربر را از هم تشخیص داد مقدار تفکراتش به کار افتاد پذیرا شد ذهنیتش بیان هرچه خواستند و نخواستند به او کدک هقنه بر مغز او وارد بکنند الان کودک ما صبح از خواب بیدار میشه، به من میگوید صبح بخیر مامی صبح بخیر پاپی نه میخوام بدونم زمان ما یک همچین چیزهایی بود کسی به پدر من جرعت داشت بگوید صبح بخیر پاپی عوویه بنده در خلا مسترها میرفت ده دقیقه یک که میشه است پونزده تا الا بیست تا صلفه ول میداد ما همون صلفه ابوی را در مقام صبح بخیر و پول تو جیبی میپذیرفتیم اینا همه کارهای فرعنگیست که داره برای بچه های ما انجام میشه از این برنامه که شوخی بود یه بخشی از برنامه این شوی جدید عدسه بود مکار مرا مدیری که رز، جبود رزدبیان هم توش هنر نمایی میکنه ولی واقعیت اینه که از نظر بعضی آقایون دشمن یا همون دشمن خودمون یک برنامه روزی گسترده ای داره برای نفوز به ذهن و فکر کودکان ایرانی یکیش همین عروسه که باربی بود که الحمدلله مسئولین محترم هوشیار بودند به موقع تونستن توسط دو تا عروسک غلچماغ و مؤمن و با اجاب به اسم دارا و سارا جلوی نفوز باربی رو بگیرن ایالتون باشه یکی دیگه از راه های نفوذ به ذهن کودکان ساختن مجموعه های کارتونی برای بچه‌ها بود که اینجا هم مسئولین هوشیارانه عمل کردن و هر کارتونی که قرار بود پخش بشه رو قبلش می توسط تیم نفوززییا به فرهنگی سرراخون و پر میکردن با تغییر داستان و تغییر شخصیت ها اثرات مخرب و منفی اونو خونسا میکردن بعد دوبله و پخش می‌شد اینجوری بود که توی کارتون فوتبالیستا مثلا اون موقع یه سری روابط دیگه ای هم در پس پرده وجود داشت که خوشبختانه ما هیچ وقت سر در ن بردیم ازش. یا مثلا توی کارتون دوقله های اون زمان پخش می‌شد جولز و جولی ازا خواه برادر نبوده آاققا چه بره به اینکه دوقلو باشن. بابا اینا دوستختر دوستبسر بودن یا یه مورد دیگه توی کارتون چوبین بود چوبین که یادتونه همیشه با اون برونکای بدجنس می جنگید داستان این بود چوبین یک مامانی داشته که چون وضعیت هجاب و پوشش درستی نداشته این مادر چوبین هیچ وقت نشونش ندادن تو تلویزیون با این وضعیت آدم دیگه به همه چی شک میکنه دیگه گلا نگاه هم به همه قهرمان های کارتونی دوران وقتی هست آدم اصلا متوجه نفوز یه چیزایی نمیشه مثل سرمانیست که وقتی به خونه نفوز میکنه آدم یهو سردش بشه به گرد سراخ پیدا کنه که عصر بعد شرکت با نوشین دوستم رفته بودیم کافه. از هر چی فکرشو بکنین حرف زدیم. از بمبگذاری در پاریس و غور زدن به عملکرد آدم‌ها تا مانتوی مد پاییز، از روانشناسی دکتر هولاپویی و بچه های لوس فامیل تا عکس فلان توریست خارجی از ایران. این دو سه ساعت که اونجا نشسته بودیم، مغزمون گیج زده از بس به چیزای بود فکر کرد. بعد خدافیزی گفتم راستین نوشین، دقت کردیم ما در مورد یه عالمه چیز که ربط خاصی هم به هم ندارن حرف زدیم؟ گفت خب افتم اینو از کجا به ذهن ما نفوذ کردن چطوری ممکنه من و تو رفتمون به همشین چیزایی قبلا فکر کرده باشیم اینقدام چیز نیست بدونیم که این همه حرف بزنیم در موردشون گفت خب به خب خاطر اینکه دوستایی مشترک زیاد داریم تو فیسبوک چیزایی که رو والمون میاد خیلی شبیه همه دم راست میگه ها این اطلاعاتی که رو شواکه های اجتماعی یا تلگرام و اینستاگرام و اینا هست هر کدوم به یه گوشه مغز آدم نفوز میکنه این قدم سرعت عمل دارن آدم فرصت نمیکنه رفو بگیره سوراخ ایجاد شده رو یادش به خیر اون زمان که اینترنت نبود نفوز مفوزی هم بود خیلی بکندی و با قیش قیش مدمای قدیمی بود که وصل میکردیم به تلفن. ت اما خانمه آقایون دختر خانمه آقا پسرها راجب به یک بحث دیگه ای در موضوع نفوز میخوایم صحبت بکنیم و اون هم همین بحث اینترنت و موبایل و این سمارتفون هایی که الان دست همه هستن و بله. بله. بله بله تشو بردارم بله. بفرما بفرما سلام علیکم خوبی شما فحش تو کعنیس داری برنامه چی می‌کنی بابا خوبه که فهمیدی دارم برنامه انجام می‌کنم همینجوری سرتون انداختین اومدین توی شما آن دو دو تو شما دولت پدر پس ای بابا فحش تو حمجی دیگه گرفتی یا هی برنامه برنامه می‌کنی بس به تو سه میذارم سه سال یه کار آبرومند نونه‌آبداری چی آخه بفرمایید کار که تو کولانه نکن فرزندم یعنی چی گو کامودو تجاوز غرر گرفته مال آرام و قرار نداره چی میگی حاجی خدا باد نده تجاوز آره چیه یعنی چه چیه؟ بلای بود سر ما آمد. نه, نه هیچی بابا بابا فحش دین اندی هر چی من بهش میگم که گوش نمیکنه گو گو گو ببین گو چند تا دابسمشش در اومده فکر میکنه بهش سوء قصد شده این داش اسمش چیه چه بلای بود این بر سر ما نازل شد این داشت. ای بابا داشت اسمش دیگه چیه بابا دیگه دابسمش حاجی دابسمش ای باری باری کلا بابا حاجی خیلی که دابسمشت در اومده یعنی مردم دوستت دارن باید شوخی میکنن آره دیگه منم همین رو میکنن بید. بیا اینم حرفای بیرابت رو میزنه دیگه نشانش بده, ببینم, نشانش بده. بیا بیا ده. ده. ببینم فرزندم نشانش بده بیا بیا نشانش بده بفرمه چقدر ما مورد هجابات قرار ببین چه با آمدنست باری کلا با خیلی خوبه که این خوبه چه میگه ملعون با مقدسات که نباید شوخه کرد که بابا یعنی حاجی چ... دیگه حالا خیلی این زیاد شد الان یه برنامه از شوخی میکنن همه دیگه یه نبود ناراحت بشی منم هم میکنن دیگه. این چه وضعیه اجاب بابا اینم که مشکل داره مؤمن این تصاور را ببینه شیطان از ده جهت بهش نفوذ میکنه مادام نودو بالله صدای ماچو را از حلقه نمبارکه اینها در میآیند حاجی گفتم این, این, این, این یه برنامه است این مدلش اینطوریه یعنی این این... چه کدک ورزشی چه فرقت نماز جمعه نگاه میکنیم نمیدونیم بابا مهم نیست اینها اینا دو سف داشتم مهم اینه که بعد حل کردن این کارو کردن دیگه بری فرشتیه یه دونه دیگه شب از بین می‌موزه سنینه به یک لوله گفتن حاجی برو لوله رو برگو گفتم لوله وصل خمه گرفت این جمانه که اسرائیلی جاسوس هم با آره نشسته صدای معدهان گشادش در میگه آره دی. ما دیگه طاقت این وز رو نداریم بابا آجی بگم با با با. بابا یا یه موبایلی که مردم میرن جای, صد... جای صدای معروف حرف میزنند خود میکنن نمیخوام ببین آجی جان اپلیکیشن و زهرمار دیگه ما سند ما نندازه اینهایه قد ما نندازه اینهایه وزند ما نندازه اینهایه ما باید ب پولیس و فتا حواسش به همه چیز هست ای بابا حاجی کاشین در و دافت ادایی من رو در می آوردم به جای شما این خدا خیلی با حالانین رو ببین فرشی جونین هم هست با دامت ببینم برد. دار دیگه جوری. کافیت رو بر شما آه. آه. رو رو رو بکن. ای کافر بیتربیت نادان مستقبر بابند به سمار جان جالبه های به موضوع برمامونم میخواه ببین نفوذ تکنولوژی آقا به کجا رسیده که دیگه حاج آقا اندر مومنین هم در امون نیست دیگه ما بیدی نیستیم که از این بات ها بلرد جلوی این نفوذ را میگریم بگر ببینم پسرم شما این سردار فتازاده را بگر ببین حاجی شما نبید ناراحت بشی از این مستر بابا حاجی شما این دو تا حالا رو می گفتن می شما رو از نزدیک ببین خیلی روستون دارن بره بره آجی به سلامتی بیا آجی بیا بازم بگو تکنولوژی بده برو حالشو ببر دیگه چی میخواد؟ خواد یعنی خود خدا مرا می خوند ببینن انتا آره با شما دیگه. دو تا ببینن با هم آه دیگه عجی من که هستم همیشه دیگه فحشیدم نمیدونم دیگه نه نه قربون شما برم شما مشغول باشید سروان بیرید باشی. در ببندید من ممنونم آره. ما برنامه ادامه میدیم شما بفرمید برید ممنون ممنون الان ما لباسمان مناسب نیست که چی بپوشیم حالا خوبه عجی دیگه تو همه ابو عمو ها هم این دیگه فقط کثیف و تمیز ده نه میشه کید همیگم ای. ببین صف مومنین پسر عزیز بریم از این اووا کشار جدید ها بخریم کالت خیلی به ابل ماشویجان حاجی جان نصفی این بحثا رو بیرون بکنید با دیگه بابا باشه خیلی خوب بفرمید باشه بابا فرشید باشه ما بریم حاجی بریم این بریم. بریم تفضل بریم تفضل که صدای ما را در حلقه خود کرده بودن آه. ایک وقت نگویی که من ناراحت شدم بابا حاجی بابا خیالت را من کارم و خودم میده میگم من پسرم فقط همین دوتامیان بگو اگه دوستی در همسایه چیزی مستخرج شده ها هم راند گذشت نه حاجی حالا شما همین دو شما باشون آشنا شو بعدا حالا همسایه همسایه ممسایشون بعدا می رسیم بفرمایید حالا این رفت خدا حافظ خدا خدا به خیر بگذره نا بودیم من کلا پرش شدم از ماجرا اینم از نفوذ تکنولوژی در هاجاقا در مؤمنین دیگه راستی چیزی حالا که بحث دابسمش شد و این دابسمش های حاجی رو هم شنیدیم شما هم اگه دوست داشتید میتونید این دابسمش های حاجی رو توی همین اپلیکیشنش پیدا کنید برام بفرسید ما روی فیسبوک و اینستاگرام اونا که بامزه باشه و خوب باشه میذاریم حتما اینم یک نفوذ تکنولوژی دیگه روزنامه، روزنامه، با قلده، روزنامه امروز، با قلده پیشخور روزنامه فرهیختگان از قول رئیس دانشگاه آزاد امروز تیپ زده بود که دو سال آینده اندازه چهار سال کار میکنیم خدا خدا به داد دانشجوهای ورودی 95 96 برسه فکر کنم میخوان شهریار رو دو برابر کنن ها. روزنامه اعتماد از قول سخنگوی قوی قضاییه در مورد اتهام پراکنی‌های بابک زنجانی دیروز تیتر زده بود که نمی‌شود دهن متهم را بست راست میگه خب دیگه نمیشه دهنه ایشونو بست ولی اگه دهنشو زیادتر باز کنه میشه یکم داروی نظافت ریختوش و روزنامه حمایت از قول فرمانده کل سپاه پاسداران دیروز تیتر زده بود که داعش هیچ غلطی نمیتواند بکند. آقا جان این هیچ غلطی نمیتواند بکند این کپی مال امام امته مخصوص آمریکام بوده شما بلدی از خود جمله بساز ها فرقی نمیکنه که کی باشه؟ فرقی نمیکنه چه شکلی باشه؟ فرقی نمیکنه از چه آینی و مسئکی باشه. مهم اینه که هم زخمت باشه هم صدات باشه. همپات باشه، باهات را بیاد، باهاش راه بیای، باهاش خوش باشی، باهات غمگین بشه، باهاش حرف داشته باشی، باهات درد داشته باشه. همه اینا اگه باشه اون موقع اون یه رفیقه. و واقعا دیگه فرقی نمیکنه که کی و کجا باشه اون فقط یه رفیقه هممون به دنبال یه همچین رفیقایی هستیم که این زردی پاییز و سردی زمستون و هزار تا خوب و بد دیگه زندگیمونو باهاش تقسیم کنیم شبتون خوش زندگیتون پر از بفیقای ی پاییز زرد و زمستون سرد و یه زندون تنگ و یه زخم قشنگو قم جمع عصر و قریبی حسر و یه دنیا سوالو تو سینم گذاشتی جهانی دروهو یه دنیا بروب و یه درد عمیق و یه تیزی یه و یه قلب مریض و یه آه قلیز و یه دنیا محالی تو سینم گذاشتی رفیقم کجایی دقیبا کجایی کجایی تو بی من تو بی من کجایی رفیقم کجایی دقیبا کجایی کجای؟ کجای تو بی من to the man for joy